مصنوی معنوی مولوی برنامه یازده هم شنیدن آنتوتی حرکت آنتوتیان و مردن آنتوتی در قفس و نوحه خاجه بروید چون شنیدان مرغ کان توتی چه کرد، پس بلرزید و افتاد و گشت سرد. خاجه چون دیدش فتاده همچنین، برجهید و زد کله را بر زمین. چون بدین رنگ و بدین حالش بدید، خاجه برجست و گریبان را درید. گفته ای توتی خوب خوشحنین، این چه بودد؟ این چرا گشتی چونین؟ ای دریقا مرغ خوش آواز من، ای دریقا همدم و همراز من، ای دریقا مرغ خوش الهان من، راه روح و روزه و ریحان من، گر سلیمان را چونین مرغی بوده، کی خود و مشغول آن مرغان شده؟ ای دریغا مرغ کرزان ریافتم، زود روی از روی او برتافتم. ای زبان تو بس زیانی برورا چون توی گویا چه گویم من ترا ای زبان هم آتش و هم خرمنی چند این آتش در این خرمن زنی در نهان جان از تو افغان می کند گرچه هرچه گوییش آن می کند. ای زبان، هم گنج بی پایان تویی، ای زبان، هم رنج بی درمان تویی، هم سفیر و خطعه مرغان تویی، هم انیس وحشت هجران تویی، چند امانم میدهی، ای بی امان، ای تو زه کرده بکین من کمان، نک بپرانیدهی مرغ مرا، در چراگاه ستم کم کن چرا؟ یا جواب من بگو یا داد ده. یا مرا اسباب شادی یاد ده. ای دریغا نور ظلمتسوز من. ای دریغا صبح روز افروز من. ای دریغا مرغ خوشپرواز من. زنته ها آغاز من. آشق رنج است نادان تا ابد، خیز لا اقسم بخون تا فی کبد از کبد فارغ بودم با روی تو و از زبد صافی بودم در جوی تو این دریغاها خیال دیدن است و از وجود نقد خود ببریدن است غیرت حق بود و با حق چاره نیست کودلی که از حکم حق صد نیست. غیرتان غیرت آن باشد که او غیر هم است آن که افزون از بیان و دمدمه است ای دریغا اشک من دریا بودی تا نسار دلبر زیبا بودی توتی من مرغ زیرکسار من ترجمان فکرت و اسرار من هرچه روزی داد و ناداد آیدم او ز اول گفته تا یاد آیدم توتی کایت ز وحی آواز او پیش از آغاز وجود آغاز او اندرون توستان توتی نهان عکس او را دیده تو بر این آن میبرد برد شادیت را تو شاد از او می پذیری ظلم را چون داد از او ای که جان را بهر تن می سوختی سوختی جان را و تن افروختی سوختم من سوخته خواهد کسی تا من آتش زند اندرخسی سوخته چون قابل آتش بود سوخته بستان که آتش کش بود ای دریغا ای دریغا ای دریغ کانچنان ماهی نهان شد زیر میغ. چون زنم دم کاتش دل تیز شد شیر هجر آشفته وو خونریز شد آنکه او هشیار خود تند دست و مست چون بود چون او قده گیرد به دست شیر مست ک بیرون بود از بسیط مرغزار افزون بود قافیه اندیشم و دلدار من گویدم مندیش جزدیدار من, دیش جز دیدار من. خوش نشینی قافیه اندیش من قافیه دولت تویی در پیش من حرف چه بود تا تو اندیشی از آن حرف چه بود خار دیوار رزان حرف و صوت و گفت را بر هم زنم تا که به این هرسه با تو دم زنم آن دمی که آدمش کردم نهان با تو گویم، ای تو اسرار جهان، آن دمی را که نگفتم با خلیل، و آن غمی را که نداند جبریل، آن دمی کزوی مسیحا دم نزد، حق زغیرت نیز بی ما هم نزد، ما چه باشد در لغت، اثبات و نفی، من نه اثباتم، منم بی‌ذات و نفی، من کسی در ناکسی دریافتم پس کسی در ناکسی در بافتم، جمله شاهان بنده بنده خودند جمله خلقان مرده مرده خودند جمله شاهان پست پست خیش را جمله خلقان مست مست خیش را میشود شود سیاد مرغان را شکار تا کند ناگاه ایشان را شکار بیدلان را دلبران جسته بجان جمله معشوقان شکار عاشقان هر که عاشق دیدیش معشوق دان کو به نسبت هست هم این و هم آن تشنگان گر آب جویند از جهان آب جویت هم به عالم تشنگان چون که عاشق اوست تو خاموش باش او چو گوشت میکشد تو گوش باش بند کن چون سیل سیلانی کند ورنه رسوایی و ویرانی کند من چه غم دارم که ویرانی بود زیر و ایران گنج سلطانی بود غرق حق خواهد که باشد غرق تر همچو موج بحر جان زیر و زبر زیر دریا خوشتر آید یا زبر تیر او دلکشتر آید یا سپر پارا کرده وسوسه باشی دلا گر تراب را بازدانی از بلا گر مرادت را مذاق شکر است بی مرادی نی مراد دلبر است هر ستارش خون بهای صد حلال خون عالم ریختن او را حلال ما بها و خون بها را یافتیم جانب جان باختن ای حیات آشقان در مردگی دل نیابی جز که در دل بردگی من دلش جسته به ناز و دلال او بهانه کرده با من از ملال گفتم آخر غرق توستین اقل و جان گفت رو رو بر مناین فسون مخان من ندانم آنچه اندیشیده ای ای دو دیده دوست را چون دیده ای، ای گران جان خار دیدستی ورا، زان که بس ارزان خریدستی ورا، هر که او ارزان خرد، ارزان دهد، گوهری تفلی به قرس نان دهد، غرق عشقیم که غرق استندرین، های اولین و آخرین، مجملش گفتم نکردم زان بیان ورنه هم افهام سوزد هم زبان من چو لب گویم لب دریا بود من چو لا گویم مراد لا بود من ز شیرینی نشستم رو ترش من ز بسیاری گفتارم خمش. تا که شیرینی ما از دو جهان در هجاب رو ترش باشد نهان تا که در هر گوش ناید این سخن یک همه گویم زست سر لدون تفسیر قول حکیم به هرچ از راه وامانی چه کفر آن حرف و چه ایمان به هرچ از دوست دور افتی، چی زشت آن نقش و چی زیبا. جمله عالم زان غیور آمد که حق برد در غیرت بر این عالم سبق. او چو جان است و جهان چون کال بد، کال بد از جان پذیرد نیکو هر کی مهراب نمازش گشت عین سوی ایمان رفتنش میدان تو شین هر کی شد مرشاه را او جامدار، هست خسران بهر شاهش اتجار هر که با سلطان شود او هم نشین بردرش بودن بود حیف و غبین دست بوسش چون رسید از پادشاه، گر گزیند بوس پا، باشد گناه. سربر سر بر خدمت است، پیش آن خدمت خطاب و ذلت است. شاه را غیرت بود بر هر که او، بو گزیند بعد از آن که دید رو. غیرت حق بر مثل گندم بود، کاه خیرمن غیرت مردم بود اصل غیرت ها بدانید از اله. آن خلقان فرع حق بی اشتباه شرح این بگذارم و گیرم گله از جفای آن نگار ده دله نولا میرو خوش آیدش از دو عالم نالب و غم بایدش چون ننالم تلخ از دستان او چون نیم در حلقه مستان او چون نباشم همچو شب بی روز او بی وسال روی روزفروز او ناخوش او خوش بود در جان من جان فدای یار دلرنجان من آشقم بر رنج خیش و درد خیش. بحر خوشنودی شاه فرد خیش. خاک غم را سرمه سازم بحر چشم. تازه گوهر پر شود دو بحر چشم. عشق کان از بحر بارند خلق. گوهر است و عشق پندارند خلق. من ز جان جان شکایت می کنم. من نیم شاکی روایت می کنم. دل همه گوید که زورن و از نفاق سوست می خندیدم. راستی کن ای تو فخر راستان ای تو صدر و من را آستان آستان و صدر در معنی کجاست؟ ما و من کو آن طرف کان یار ماست. ای جان تو از ما و من، ای فی روح اندر مرد و زن. مرد و زن چون یک شود آن یک تویی، چون که یک ها محو شد آنک تویی. این من و ما بهر آن برساختی، تا تو با خود نرد خدمت باختی تا من و توها همه یک جان شوند عاقبت مستقرق جانان شوند این همه هست و بیا ای امر کن ای منزه از بیان و از سخن. جسم جسمانه تواند دیدنت در خیال آرد غم و خندیدنت دل که او بسته غم و خندیدن است تو مگو کو لایق آن دیدن است آن که او بسته غم و خنده بود او بدین دو آریت زنده بود باغ سبز عشق کو بی‌منتهاست جز غم و شادی در او بس و هاست عاشقی زین هر دو حالت برتر است بی بهار و بی خزان سبز و تر است دی زکات روی خوب ای خوب رو شرح جان شرح شرهه بازگو کسکرشم غمزۀی غمازهی بر دلم بنهاد داغ تازه من حلالش کردم ارخونم بریخت من همی گفتم حلال او میگوریخت چون گریزانی زناله خاکیان غم چریزی بر دل غمناکیان ای که هر صبح که از مشرق بتافت همچو چشمه مشرقت در جوش یافت چون بهانه دادی این شیدات را ای بهانه شکر لبهات را. ای جهان که نرا تو جان نو. از تن بی جان و دل افغان شنو. شرح گل بگذار از بحر خدا. شرح بل گو که شد از گل جدا. از غم و شادی نباشد جوش ما. با خیال و وهم نبود هوش ما حالت دیگر بود کان نادر است تو مشو منکر که حق بس قادر است تو قیاس از حالت انسان مکن منزل اندر جور و در احسان مکن جور و احسان رنج و شادی حادث است حادثان میرند و حقشان وارث است صبح شد ای صبح را پشت و بنا. عذر مخدومی حساماالدین بخواه عذرخواه عقل کل و جان توی. جان جان و تابش مرجان توی. تافت نور صبح و ما از نور تو در سبوحی با می منصور تو داده تو چون چونین دارد مرا باده که بوت کوترب آرد مرا باده در جوشش گدای جوش ماست چرخ در گردش گدای هوش ماست باده از ما مست شد، نی ما از او. قالب از ما هست شد، نی ما از او. ما چو زنبوری ما، قالبها چموم. خانه خانه کرده، قالب را چموم. رجوع به حکایت خاجه تاجر بس دراز استین حدیث خاجه گو تا چه شد احوال آن مرد نکو خاجه در آتش و درد و هنین صد پراغنده همی گفتین چونین گه تناقض گاه ناز و گه نیاز گاه سودای حقیقت گه مجاز مرد غرقه گشته جا میکند دست را در هر گیاه میزند تا کدامش دست گیرد در خطر دست و پای میزند از بیم سر دوست دارد دوست این آشفتگی کوشش بیهوده به بی هس خوفتگی آنکه او شاه است او بیکار نیست. ناله از وی ترفه کو بیمار نیست بهر این فرمود رحمان ای پسر کل یومن هو فیشان ای پسر اندر این رحمی تراش و می خراش تا دم آخر دم فارغ مباش تا دم آخر دم آخر بود که عنایت با تو صاحب سر بود هرچه میکوشند اگر مرد و زن است گوش و چشم شاه جان بر روزن است برون انداختن مرد تاجر توتی را از قفس و پریدن توتی مرده بعد آنش از قفس بیرون فگند توتیاک پرید تا شاخ بلند توتی مرده چنان پرواز کرد کافتاب از چرخ ترکی تاز کرد خاجه حیران گشت اندر کار مرغ بیخبر ناگه بدید اسرار مرغ روی بالا کرد و گفت ای اندلیب از بیان حال خود من ده نصیب او چه کرد آنجا که تو آموختی ساختی مکره و ما را سوختی گفت تو کو و, و فیلم پند داد که رها کن لطف آواز و به داد که آوازت تو را در بند کرد خیشتن مرده پی این پند کرد یعنی ای مطرب شده با آم و خاص مرده شو چون من که تا یابی خلاص. دانه باشی مرغکانت برچنند قنچه باشی کودکانت برکنند دانه پنهان کن بکلی دام شو غنچه پنهان کن گیاه بام شو هر که داد او حسن خود را در مزاد صد قضای بعد سوی او رونهاد چاشم چشمها و خشم ها و رشک بر سرش ریزد چو آب از مشک دشمنان او را ز غیرت درند دوستان هم روزگارش می‌برند آنکه غافل بود از کشت بهار او چه داند قیمت این روزگار در پناه لطف حق باید گریخت کو هزاران لطف بر ارواح ریخت تا پناه یابی آنگه چون پناه آب و آتش مرتو را گردت سپاه نوح و موسی را نه دریا یار شد نی بر اعداشان کین قهار شد آتش ابراهیم را نی قلعه بود تا برآورد از دل نمرود دود کوه یحیی را نسوی خیش خاند، قاسدانش را به زخم سنگ راند، گفت ای یهیا بیا در من گریز تا پناهت باشم از شمشیر تیز. ودعا کردن توتی خاجه را و پریدن. یک دو پندش داد توتی بینفاق. بعد از آن گفتش سلام الفراق. خاجه گفتش فی امان الله برو. مرمرا اکنون نمودی راه نو. خاجه با خود گفت که این پند من است راه او گیرم که این ره روشن است جان من کمتر ز توطی کی بود. جان چنین باید که نیکو پی بود پرنامه های مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرج، تهیه و اجرا کردند Go away!